سوره نملی آیه 40 قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يبتدئ اليك طرفك فلم ما رآه مستقرا عنده قال قضیه یوسف بن برخیا حضرت سلیمان قال عنده الذي عنده علم من الكتاب که علمی از کتاب میگن عاصف ابن برخیا خواهرزادهی حضرت سلیمان بوده و وصی او چرا خود سلیمان نیاورد چون میخواست مقام وصی شو بره بکشه کما اینکه پیغمبرم به عناوین مختلف علی و آل علی رو برفت می‌کشید علی ام حسین رو برفت میکشید دوران حکومت علی در کوفه اینو بگم برگردم رو آیه یه مدتی بارون نیومد مردم کوفه اومدن یا علی بارون نیومده یه میشه نماز باران بخونید دعا کنید امیر امام، امام هستن هم هستن امام حسینم. هم امیر المؤمنین پرمودن برین به حسین بگید نماز باران بخونه چش. امام حسین هم پرمودن بابام امر کرده چشم نماز باران خوندن باران باری یعنی امام المؤمنین مخواد به مردم کوفه بده همین حسینه که شما سنگ رو مثل باران از پشت بام ها به سرسن و بچهش میریزید خواد به رخ بکشید حالا آسف ابن برخیا رو گفت آورد تخت رو سلم ما را اقو مستقرن اندهو وقتی تخت آورد جلوش گذاشت یعنی خداوند یک همچ قدرتی رو در اختیار عزت سلیمان گذاشته قال هاذا من فضل ربي این عنایت خداست در حق ما فضل خداست لیبلونی اشکر ام اکفر الله اکبر سلیمان خدا این قدرت رو به من نبی داده تا منو هم در حد این قدرت امتحان کنه آیا شاکرم؟ یا کف میبرزم؟ فمن شکر فا این نمایش کرول نفسه کسی شاکر باشه برای خودش کرده یعنی شما گل الان در راه خدا چیزی بدید به خدا خدمت کردید به خودتون کردید مقام خودتون رو بردید بالا و من کفره فا ربی نرد کریم حالا اگر کسی هم بخواد کف به برزر خدا و که بی